الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على عدائهم اجمعين اللهم انفرنا جميع المشهدين ورحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين یه مطلبی رو دیروز عرض کردم امروز تکمیلش بکنم تیم ما وارد این بحث به طور کلی نشدیم اما خب به مقداری که اشاراتی باشه ارز کردیم دیروز یک روایتی رو مرحوم کلیمی کرده از ابن مسکان به اصطلاح از عبی بسیر انا عبی عبدالله و ارز کردیم که مرحوم شیر هم این رو بورده ما در اون بابی که نجاسات بود مرحوم شیخ هر فقط از کتاب شیخ نرم کنید اونم زید حدیث اما در این بابی هیفته از ابواب ما مطلح بابی هیفته حدیث یاده ابتداعا از کلینی نقل کرده بعد نوشته براباه و شیخ به اصنادیه انل حسین ابن سعید که همین مفت نیست که در باب نجاسات بود و عرض کردیم اینکه اشکالات به مرحوم شیخ این است که حدیثی رو نقل میکنه که سندن و متنن با کتاب کافی یا تاریخ اختلاف یکی از اون موارد همینجاست عرض شد خدمتون که مرحوم کلینی از کتاب حسین سید نرو کرده و سند یکیه با شیخ الا اینکه در کتاب کلینی هست انه عبی بصیر انه عبی عبدالله در کتاب شیخ حضر ابن مسکار الی عبد الله اوی وصیر مرحوم این خب اشکال کردن به که چرا ایشون مثلا اوی وصیر رو انداختن کردن کردم من نکته این نیست که مرحوم شیخ نسترجی چیزهاش کسی تو بس هر کرده نکته همون نکته است که من دیروز عرض کردم اختلاف نسخه مطرح بوده دو نسخه در اختیار بوده یه نسخه از کتاب حسین سید در اختیار مرحوم کولی بوده یه نسخه از کتاب او تنسید در اختیار مرحوم شیخ طوسی میفته و شاهد بر این مطلب حالا غیر از این که در خنل هم با هم دیگه اختلاف داره اصلا متن رو که شیخ هم نقل میکنه فرق میکنه حالا من برای شما متن حسین متن کتاب کافی رو و اختلافاتش رو هم با مرحوم شیخ میگه معلوم میشه که اصولا نسخه شیخ یک خللی داشته حالا البته شیخ رتفتن دو رتفه بعد از کلینیت هم در ها سه رتفه لیکن به هر حال معلوم میشه که نسخه شیخ خالی از خلل نبوده توضیحات بیشتر نسخه شناسی در جدیه. دیگه ارز کردن در کتاب کلینی هست اینطور ادت من اصحاب نان احمد ابن محمد که همون مرحوم اشعریف انال حسین سعید از دو یکی میشه ان ابن سنان که محمد باشه ان ابن موسکان عبدالله باشه ان ابی بسیر عبدالله. که ارز کردم در کتاب شیخ هست ابن مصفان انا عدی عبدالله بعد مثل سال سهلت عبدالله اما قتل آبار، فقال امل فاره و اشباهوها کلمه و اشباهوها در کتاب تحلیم نیامده شیخ هم ابتدا کرده به اسم حسین سعید این کلمه در کتاب تحلیم نیامده در کتاب کلینه اینطوره فیونزه و منها سب و دلاء. پس باید هفت در باشه مگر اینکه آب بو گرفته اینقدر آب دکشیم تا بوی آب داره در کتاب شیخ توسی که از همون کتاب واسه این سعیده داره فیونزه و منها حتی یکیم نصف سبر هم شده حالا اون در کلمه ها بود در کتاب شیخ در تهذیب طب و دلا فی انلا تغییر ما کل این حذف شده این مبنئی که ما هی از ارذ نمی‌تون حجت خبر واحد رو اشکال بکنیم چون ما ده ها و صد ها مورد از این روایت ببینید در یک نسخه آورده چه الان دیگر همین حدود نصف صطر حذف شده من یک جای دیگه شواهد ارضه کردم ان بعد بعد از این هم ارزیاب خام که خدمتتون گاهی اوقات حرف اصلا موثر به معنا نیست و گاهی اوقات حصف موثر اینجا معثره در معنی در کتاب کلین داره اول هفت در بکشه اگر بوی آب زیاد بود بکشه تا آب پاک بشه در کتاب شیخ داره فیونزه حتی یتیب دقیق کردیم؟ بله در بقیهش هم اختلاف خیلی کمه یعنی اختلاف خیلی کمه اونها در زیادید و کلوش این, این رقعه تلبه علایه حاله اشکال به شیخ توصی نشه اینها همه منشه تعمل و تدبر ما بشه که چطور نسخه کتاب مختلف بوده و اصحاب چه تعاملی با این نسخه مختلف داشت از این بحث نه یکی خوش بود بود بود بود بوی بود بود بود بود خب حالا برگردیم به بحث خود من چون بعد مقایسه کردن میشه مقایسه مقارنه کردن مرد هم خرابی داره یعنی معلوم میشد که نسخه حسین سید شیخ هم سندن کم داره هم متنان کم داره افتادگی داره از مرد نه الان این نسخه شیخ تو الان اینجا مسئول مرحوم صاحب هدار اینجا مرحوم صاحب هدار نمشه به اسنادی. اما این سند در کتاب جینی در آن مرحوم کلینی عن اد پن احمد یعنی احمد اشعری حالا مرحوم شیخ طوسی سفرش نمیشه مفید عن احمد یعنی احمد ابن محمد ابن ولید عن ابی عن حسین ابن عبان عن حسین سعید پس معلوم میشد که نسخه شیخ اصلا با نسخه کلینی فرق میکنه کلینی نسخه احمد اشعری رو اختصاص ایشان نسخه حسین ابن حسن ابن عبان من ان بعدها الله بعدا توضیح خواهم داد یکی از نسخه بسیار مشهوره در قم همین نسخه است نسخه حسینی در حتون این هم شرحی داره مرغ حسین سید خودش ساکن اهواز بود و کتب رو با کمک برادرش کتب حسین سعید در اون زمان مثل کتاب تقریبا کافی در زمان ما چون ابواب رو در سی کتاب نوشته شد. نوشته بود مشهور شد به الکتابه سلاسی اصلا در اون وقت اصحاب میذنه کلوه سلاسی کتب سلاسی، کتب حسین سی در فریدواصف مثلا در در صفاره در یک دو مورد داره له کتب مثل کتب سلاسی در حسین سی این یکی کتاب‌ها مشهور بود که به اونها در می میشد کسی اگر دوره‌ای در فریدواش بود مثل کتب سلاطین حسین سی دقت می‌کنه ایشان در اهواز بود اواخر عمره و و علمای قم دعوته شدن چون خیلی واضح نیست یا خود ایشان کشیش شد ایشان قوم تشریف بردهن حسین و, و در قم هم فوت می‌کنه و در قوم در منزل این حسن ابن عبان وارد شود. بعد از فوت حسین سعید پسر حسن یعنی حسین نه حسن ابن عبان کتب حسین سعید میده، میگه اینها کتاب است که من از حسین در منزل پدرم شیدن لذا یکی از متادر راه های ما، یعنی که از نسخی که از آمادر اختیار داریم نسخ حسین نه حسن ابن عبانه حالا اگر تأمل بشه که خود این آقا توسیق نشده خب این حسین ابن حسن ابن در مساد رجالی ما توصیق نداره لکن این شهرت رو داره خوب بگر کردید ایشون مشهور بود که کتب حسین سعید رو نقومی جده حسین ابن حسن ابن عوان قومی دقت فرمونید الان دقیق کنید مرحوم شیخ که ب... در بغداد بوده از استاد بغدادیش مرحوم مفید از احمد پسر ابنال ایشون هم قومیه از ابن ولید ان حسین ابن حسین ابن عبان. تاریخی نسخم واضحه از اون طرف تاریخ نسخه مرحوم کلنی هم واضحه احمد اشعری که از بزرگارم خوبیش دو باید حسین سایی نفت کرده پس شد دو نسخه به جایی که مرحوم صاحب علاقه بیاد این نکات تاریخی رو بررسی بکنه آمدن به شیخ توصی حمله کرده. از کردیم اولین حمله رو شهید ثانی در گرایه داره ما قبل از این یعنی چون دادن سینه دادن مقارنه از متون الان که اومدن مقایسه کردن مثلا حدیث واحد در کتاب کلینی از همین سند حسین طرید ابن سنان ابن مسکا هم سندش کوتاهی داره شیخ هم متنش کوتاهی داره به ذهن و واجین چی است که شیخ تهاون کرده چه عجل داشته مرو استاد میفهمه که انشغالات خارجی زیاد داشته مشغول مرجعیت بود یا استعجال داشته من در بحث قبلی هم متعرض شدم انصاف قضیه شیخ در سال 408 وارد بغداد شد 4049شون از شیخ با بیرون کردن یا بیرون شدن از بغداد به طرف نجس در این 41 سال در کل این معارفی که ما داریم ایشان کتاب داره یعنی اگر ما الان مثلا از نجاشی فقط در فهرست کتاب داریم تویشون فهرست هم داریم رجال هم داریم ما الان از کشی فقط در رجال کتاب داریم کتابی شیخ توصیف فقه خلاف هم داره، مقارن یا مقارن هم داره. شیخ طوسی فقه معذور هم داره، کتابو داره. شیخ طوسی فقه مبسوط و تبیعی هم داره، رجال هم داره، حدیث هم داره، کلام هم داره، تفسیر هم خب ما غالبا علمای ما متأخر مثلا آخویی اصول دارن، یه کلام نداره. یه مختصر تفسیر دارن، فقه دارن، بر رجال دارن، فهرست نداره. مرحوم آو بزرگ فهرست داره با یک تراجم طبقات علام شه چیزی که نبنه هم حوض مرحوم شیخ توسی از خصایش مثل یک دارت معارفه یعنی الان ما یک دوره معارف شیعی رو تقریبا به طور کامل پیشی شیخ توسی داریم اصول داره ایشان فقص چهار جور داره نه یک جور فقص حدیث دو جور داره نمیدونم فهرست داره کلام داره رجال داره تفسیر داره و اینها و تمام اینا هم در طی یک سال نوشته شده بود. در طی یک سال. چیزون از ضعف نظر بود، رفتن برای پناه نجاتی نبود. من مثلا در زمان مرحوم شیخ قبر امینمون بود، در یا مناسب، مسی است که مثلا گاریچی رو گاریچی اونجا بساط پهن می‌کردن در یه بساطی پهن کردن، خیمه می‌زدن، چادر می‌زدن، مثلا چون شهر بود، مثلا که کوفه اودی ده کیلو مسافر لذا به دو مسافر مثلا مسیر جمکران ثابته یا رو که باش خالی باشه، مرهوم شیخ با حجرتشون به بنجات پای پای هزار که وقتی نماز میکندم قبله ایشان یشود می میشن من الان به اسم مسیر شیخ توسی از اون از اون در پشتی ایال مشاهده شدن نجات میدن. این جایی که هم به اسم مسیر شیخ تودی خانه شیخ توسیه، این خدا توسی همیشه. شیخ منزلشون اونجا دادم و جوازشاش هم شهر شد هم حوزه شد. نجف از خصوصیشی شهر شهر که شهریتش و هم با همه. نه اینکه اول شهر بود و حوزه شد. از وقتی که حوزه شد شهرم بود. و در حدود دوازده سال که برای شیخ خصوصی در منزل داریم. دوازده سال دوازده سال. سال، تألیفی ندارند. یه عجیبه تمام این تاریخوار مال بغداده. خب این یک ای مرزه بر ولاده. میخواد کسات اشتراط میخواد. لکن ما مطمئنیم با کسات اشتراط شیخ چیزی به اصطلاح موزه ما استاندارد های علمی دانشگاه روز و عمل کنه دقیق بوده تصرف نمیکرده به خلاف این تطوری که آورده ما اینو از دفاع خود اون شیخ یک درای مرحوم شیخ چهار بخشش کرد اون آیه چطور کرده بخش اولش رو من حاشیه دارم اینجا که بر اون چه انسانی اشکال سال هم اونجا من حاشیه که نه اینطور نیست این اشکالات به وارد نیست ببینید رو دقت بکنید الان اگر آقایون دقت می‌کردن ما دو نسخه از حسین سدیقی، نسخه احمد اشعری، نسخه حسین ورسدین ابان و هر در قلم سابقه داشته هر دو تا تاریخ دارن با این دو تا نسخه با هم مختلف بودن هم سنلن گیرن هم متنه یعنی نسخه شیخ داره حالا اگر در نظر بگیریم اگر در نظر بگیریم که احمد اشعری از بزرگان اصحابه و حسین ابن حسین ابان کنان استوشو بودن توصیق هم نداره در آقایان مثل ارز کردم اخباری ها میگفتن مثلا یه آقا توصیق ندارن یا تضعیح دارن مثل سهل ابن زیاد اینا طریق هم مهم نیست ما حرف اون که خود طریق هم مهمه یعنی وقتی خود حسین حسن ابان جزو فضلا نباشه در اصنساخ هم دقت لازم نمیشه الان نسخه ایشان داره ابن مسکان هم عبی عبدالله خب آقایان تو ابن مسکان نقل جا د اما نتخه احمد اشعری در هم عبیقیسی نزی عبدالله مشهر حل میشه. در نسخه احمد اشعری نیم صدر اضافه داره که حکم رو عوض میکنه اما در نسخه مرحومه حتی نبنه حسن این نیم صدر حضر شده ما هم که بگیم خبر واحد حجت نیست مرادمون اینه که بر سند هم سعی باشه باید شواهد رو بیشتر دقیق کنیم چون در موتون کمو زیاد شده همان برای شما این مثال دادم بعد از دیدن مثال های زیادی خواهید در دقت بفرمون حالا برها برگردیم به بحث خودم ارز کنیم بحث ما بعد از بحث ما لهون نفس و مال ایسه لهون نفس ارز کنیم مثال در اجزاء میته طبعا تا حالا برای, حضر... برای عالم روشن شد بحث ما در میته اجزاء میته اخصام میته در چند محور در یک محور هم نیست یکی در نجاسته یکی در حرمت انطفاء و عدم و حرمت یکی در مانعیت صلات، یکی در مسئله به اصطلاح خرید و فروش بیئه. ممکن است یک مسئله یک جاش درست بشه چه دیگهش گیر داشته باشه. با هم یه خلط نباید مثلا یه خلث نواز بشه. ممکن است مثلا بگید با پوست میته میشه انطفاء و نماز نکنید یا میشه نماز بخونید اما خیلی فروش نکنید. اینا احکام متعدده. اونی که ما در قرآن داریم حرمت و رجسون بنابراین که روش ما همه برگرده این در قرآن بیش از این مالی دلیل در نداریم پس تمام چیزهایی که بر توسط تواتر رسول الله و اون چیزی که از اهل بیت عنوان ما کتاب و سنت به ما رسیده در اجزاء میت اولین بخش از اجزاء میت که خیلی مسئله انگیز بوده دین ما و سنی ها و کاملا با هم یه اختلاف داشتیم مسئله به اصطلاح جلد میت است با مثلا فرض کذا قابل استفاده هست یاد اقوال اهل سنت رو خوندیم مناشه خلاف رو بین اهل سنت خوندیم حالا بیایم روی اقوال شیه در اقوال شیه ارز کردیم که از مرحوم صدوق نقل شده که انتفاع به جلد میتر میشه کرد و ظاهرش اینه که قابل به نجاست هم نیست ظاهرش اینه حالا فتواش بودی یا نه اون بحث دیگه و از مرحوم ابن جنید گفتند با چیز اشکال نداره با دباغ اشکال نداره از خود کتاب فیروزاب داره که دباغ الجلده تهورب اینم ما دارم البته من امروز پیدا نکردم اما در بعضی از کتب از فیروزاب هرچی حالا من روایت صدوق رو و کار صدوق رو اول بخونیم تا درسی بشه از قراجی به جلد تیگه هم پیش اهل سنت هم پیش ما دو بحث مثلا یک بحث اشتباه است یک بحث به میته ای که اصولا به معنی قابل تصفیه است یک بحث به میته یا غیر میته حیوانی که از قابل تصفیه است مثل سگ و خوک پس در حقیقت خوک هم به معنای میته است دیگه چون مثلا قابل تصفیه نیست فقط میته که مختصی نداره پس پوست گوساله اگر میته بود یعنی خود گوساله ورده بود پوستش جلد میته است اما قابلیت هست به قول آئین فلاسفه محقق نشود اما جلد خوک اونم میته ارتاب میشه اما جلد میته ای که اصلا قابلیت نداره مختصی درش وجود نداره ما حالا اگر بخوایید در این بار صحبت بکنیم ما روایات معارض در هم جلد میته داریم هم در جلد خوک داریم چون حالا که اسم خوک پیش آمد یه روایت هم در موی خوک داریم سه حالا البته من به من اشکار برداریم که خوک از بحث میته خارج من میدونم بحث خوک اونا نجس چه طور عین عمر رفیعی میگه نه اون اصلا ممکنه از و خود اهل سنت هم ایده بین خوک حتی با شک فرضیشه ایده هم گفتم مطلقا درسته فقط ایده یم دو خارج کرده پس بحث خوک قطعا خارجه لکه ما چون سه تا روایت داریم یکی در جلد میته هست یکیش در جلد خوکه یکیش هم در بوی خوکه و فعلا توی بحث هر سه شو میخونیم. اما روایتی که ما الان در جلد میته داریم منحسر است به روایتی که مرحوم شیخ صدوق در اول فقیه نقل کرده اوائل فقیهه و در این چا پاقل اگه خدمت باشه ذکر صفحه نکرده نوشته صفحه ننوشته یعنی مثل پیدا نکرده نه هر تو فقیه لباس جنده در اون کتاب بس همون که معنیت اون رجوع رو خودش طولانیه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل چاپ آی جلد دوم در این چاپ آیین آبل بید ایده جلد سلوم عباب نجاسات باب سی و صاحب وسائل اجازه این, این حدیث رو الان در مسادر ما منفردن مرحوم شیخ صدوق آورده بین ببینوا قال سئل از صادق علیه السلام این بحث رو ما مطرح کردیم که گاهی صادق میگه قال از صادق گاهی میگه سئل رو ساده. صادق هم کلمه زیاد بزرگان ما مسعود شادید محائری در جناب صراطشو دیدن و شاگردی که برام خودش درساله لاذرر داره یکی از, از علما دارن که ایشون از از از داره بزرگان کیشگ و قال ساده صادق معتبره گفت سئل ساده صادق معتبر نیست چی جو نوشتن هم کلمه نداره صحیح نیست این مطلب این اصلی مطلب رو یک از اهل سنت ای نه نه دی زیاده درباره بخاری گفتن چون بخاری دین از احادیث مسند در خودش در کتاب صحیح و روی هر رسول و قال رسول الله که اصطلاح خودشون بلاغات بخاری میگن یعنی ما بلغه به رسول الله مراسی بیخیشون داره بین قاله و روی هر رسول الله فرق گذاشته اهل سنت البته به ما نداره کتاب بخاری رو مبانی نداره از کرد این رو صداو در اول دیباجه داره وجمیه مافیه حجت بین بینابی این عبارت دیباجه تمام روایات رو میگیره چه به نه و پال الساده بگه چه نه سوال الساده فهم نمی کنه عبارت دیباجه همه رو شامل میشه یعنی اینی که میگه مثلا سوال یعنی قبول نداره نه چون قبول داره فاصون بهش میگه این نیست نه این نکته نیست بله من فکر می این نکته دیگری باشه که بعیده صدوق که هم فریه هست هم حدیث شناسه هم محدث بزرگه از کلم از مراهم حاجی که که علاوها تربیت مهندس عزام محدث مهندس کسی که زیادی کل جری وادی شیعه رو دیده. انصافا همینطوره انصافا, همینطوره. انصافا هم صدوق فوق العاده است در حدیث انصافا فوق العاده است و باید اعتراف بکنیم مثلا در این جهاد در شمولیتشو به نظر ما شاید از کافی ها علیتره در اطلاع بر احادیث طائفه. حالا در اختیار نه کلینی و توسی و همون شیخ دوستشون در روید حالا چرا شاید توی همین بحث اشاره بکنم سؤال از ساد و علیه السلام انجلود المیته یوگ علفی هل لبن که لبن در روید معنی شیره دقیق می کنم اما الان در اصطلاح در اصطلاح سن الان عرب های معاصر ما لبن به معنی است. ماستش حالا. لبن به معنی ماست می گیرن البته لبن به معنای لبنه یعنی چیزه آجور اون جمع آجوره این لبنه لبنه یا لبنه اون آجوره لبن خودش معنای شیره الان عرب های ما در شیر حليب میگن لبن رو به ماس میگن گاهی هم قیل میدارن لبن ها رائب رائب یعنی بسته شده روبه گاهی هم روبه میگن خود ایراقی روبه بیشتر میگن روبه یعنی خود, یعنی خود ماس ولما خودش روبه مثل همین حالا میدید در خون ما سکته پیدا میشه چی میگن؟ خون خلید لخته ها روه لخته بستن لخته لخته شدن خود کلمه رابه رابل لبن یعنی برید تیکه تیکه شد وقت لبن رائب در الان میگن یعنی لبن رائب این هم میگن لبن رائب یعنی ماست بستن الان عرب های ما ما لبن روزانه ماست به ماست بکار میبرن لکن شیر در شیر لفظ حليب رو بفنن لکن در روایات لا و تأکل سمک و تأکل و تأکل و انها مختلفی که قرارت شده اون لبن در اونجا آنه شیره اینجا من شیره اشتباه نشه فیه لبن و ما و سم روغن ما ترافی از کنیم به سیغه مجهول خونده بشه چون این متعارف بوده نمو خواستم بگم رأیت و شخصیه یعنی ما یوری الله و فی وقتی فعل منصور به خداست در لغت عربی مجهول خونده میشه به احترام عظمت هر مجهول خونده میشه ما ترافی قال علی さん لا بس بنتج الفی ها ماشئ در این جرود میته من ما ان لبنن اوثم و کتور و امنه پس اولی انتج الفی ها یعنی انطفاء دومی تتوب و امنه کشر به نجاست یعنی پاکی ده و لکن لا تسلقی ها لکن مانعیت داره چه اشتن شد؟ پس در این روایت مبارکه از اون بحثایی که ما گفتیم فقط خیل میشه شده امده اما چون حریلیت انتفاع آمده و نجات علم نداره قاعدتاً خیل میشه جایز میشه پس از این احکام سه تا حکمش بار میشه پس جبودر میته هم انتفاع جایزه هم نجس میستم چون داده تتور نافه نتش رهد. و هم میشه خرید و فروش کرد فقط چیزی که هست مانعی از نمازش محفوظه بلاکه لا فلسفی ها البته از کلم سنی ها غیر از این بحث بحث عقل دارن میشه پوست خورد یا نه این دیگه توش نداره این مگر بگیم چون طاهر از تو جواز اتفاق داره توش عقل مثلا به ملازمه و الا بالملازمه به توش در میان این رواه مرسل هیچ سند نداره مثلا سؤل صادق علیه السلام. از عسكر مرحوم و استاد این به واحد یک مشکل دیگه داره که خیلی مشکلت نظام استاد فکیم به اجماع قطعی رد شده توش دباغ هم نداره دباغي نداره عسكر مرحوم استاد این مطلب رو توی اورده تو، توی توی تذیه ملاحظه رو در دارن چون مصوال های من ایشون در اینجا به دقت نگاه نکنم بحث ایشون رو مفصلا از توی نگاه به هر حال از این عبارت ایشون مرحوم استاد می‌فرمای که اصلا خود اهل سنت هم گفتن جلده میتره میشه انتفاق کرد در جایی که دباقی بشید اطلاع دباقی هم کشتن کاره لذا این منافیه با اجماع قطعیه اشکال ایشان لیکن این اشکال رو من دیدم توضیح دارم حسابا وارد نیست شون از اهل سنت دار افرادی مثل زهری بزرگانشون من و مثل خود بخاری که از جلده میتره میشه استفاده کرد بدون دباقی و از کم که از همتر نفتشمون اون روایتی که داره در اون گوستنده لاغری که پشت شده بود تو بعضی داره حلا دبق تمو فنتفعتم به اباهه. احابه تو بعضی آج داره حلا دبق تمو تو دبق تمو نداره اینو تمثل کرد به همون اطلاع تفعتم به اباهه این روایت پس این روایت توی اهل سنت هم سابقه داره این تصور که این مخاربه اجماع است نه مقاله شما حقیقت نیست هم روایت دارن و هم قائل دارن که به جلود میته مطلقاً میشه اتفاق کرد ولو بدون دباغي خب چون این روایت رو حالا با متعرض شدیم مشکل کار ما الان این روایت خب به لحاظ انفراد شیخ صدوق به لحاظ شذوز روایت به لحاظ اعراض کلی اصحاب از این روایت. ما هیچ کس از اصحاب به استثناء صدوق قائل به این روایت نوردیم از ابن جوید بعد از دباغي قبل از زباضی گزارششان اعتبارات فراوانی داره که این روایت حجیت نداشته باشه نه یکی خیلی فراوانه اعتبارات شکی روزی با قطع نظر از این اعتبارات من چون بحث حجیت رو از بحث, بحث های واقع بینانه جدا می کنم اصلا بحث اینه که این مطلب رو از کجا صدوق آورده این یعنی چی منظور صدوق همچی مطلب عجیبی رو آورده که در هیچ یک از مصادر ما وجود ندارد این احتمالی که من میدم مرحوم صدور یک اشتباهی برای ایشان پیش آماده. حالا من توضیحات رو میدم تا این شما روشن بشم. از کردیم ما از روایته. البته این تصور نشه که مرحوم صدوری فقط تو فقیه رو آورده. شما فقیه فتوان این این مطلب رو تقریبا در کتاب مقنه هم آورده. لیکن در مورد داره فی زقه. یعنی خیک. من جلدت میته الان که چاپ شده میته با تعریص جلد به نظر زها ازازه باشه من جلد میته همین حرف اونجا هم داره دباقی هم پیش نداره پس اضافه برای که در کتاب فقیه آورده. ملخصش هم به صورت فتوه تو کتاب مغنه اوورده دقیق فرموندید پس این نیست که مرمون صدوق اشتباه کرده فتوه اینه این نمیشه این کار کرد حالا دنبال د از غیر از بحث جلد میته ما یه چیزی هم در جلد خوک داریم یه چیزی هم در موی خوک داریم اون روایت جلد خوک رو مرحوم سال و سال تو امواب ماه مطلق آورده. به حسب این جلدی که الان دست من هست این چاپی دست من هست چاپ آیون و در جلد اول در امواب ماه مطلق در چیز در باب چهارده از ابواب ما مطلعه بله صفحه سال هفتار. این در این باب دو جا آورده یک دو تا مح... دو تا روایت یکی نیست یکی مال به موی خزیره یکی مال پوست خزیره یکی صفحه 170 یکی صفحه 175 این روایت اون هم روایت عجیبیه لکی اون روایت غیر صدوق هم آورده حدیث شماره دو از باب چهارده باب با مکلف مرهوم کلینی ان محمد بن یحیی شیخ القبین از محمد بن یحیی عطار به بس و بسیار بزرگوار فوق العاده بزرگوار برون آمدن ان احمد بن محمد همین احمد اشعری که الان دیگه خود دیگه با ایشون آشنا شدید ان ابن محبوب مراد حسن محبوب حکم محبوب در بعضی از عبارات ما داره کان احدل ارکان ال اربعه زمانه یعنی تعبیر ارکان رو وقتی کردم مال خط قلوب بوده ارکان عربه قیاسم اون چهار نفری که با امر مومنین بودن مرداد و سلمان و به و ابوذر عبوزر در هر زمانی هم چهار روح به مسابه اونها حسن محمود در این مقام قرار داده شده به عنوان مثلا مثل سلمان ابوذر در اون رتبه و از کردیم ایشون کوفی هستن و مرحوم احمد اشعری سفری به کوفی داشتن این من دیگه توضیح داشته دیگه ارز سفری به عراق داشتن به کوفه داشتن میراث های کوفه رو به قوم آوردن یکی از این میراثا کهشون آوردن کتب حسن فغیه کتب کرابانی هم بوده معظم روایات کوبی های ما از کتب ابن ماحو از همین طریقا از مرحوم احمد اشعری البته ابرای معاشم هم داره سهل بن زیاد هم داره عده ای از کوبی ها داره در احمد نیست یکی از راهای بسیار خوب و بسیار خوبه کتاب حسن محمود اون چیزی که نحوه مددتا احمد عشقی احمد عشقی از سر که تقیه و مولا و حدیث سناس و کاملا دقیق خیلی اهل ققت در اصانی دوم و تون اینا. اضافه بر این سلطه سیاسی قوم با ایشان بود از مزرگان سیاسی قوم از اشاره یمنی ها سرستن این ابن رعاب این زراره این یه عجیبه صافتا روایت با این سند سعی ما استلاحا به اینجور روایت هم بیم صحیح اعلائ می‌ندند نه ثقات و اجللا طائفه اینجا همه ثقات و اجللا طائفه هستند اصطلاحاً صحیح اعلی است همشون علی بن راف بسیار بزرگوار و بسیار جلیل قد خیلی مرده بود این برادری ای داشته که جزء طوارج بوده در شهر حالش نشسته این دو تا با هم مخالف هم بوده یکی شیعه بوده و اون خارجی بوده دو تا طرف متضاد صالح یک بار وارد با بحث مید. بعد یه روزی مواصط کتابی رو بخونه بردم یاد میشینه میگه که خب شراب میخوای خب خوب مثلا خب مثلاً گفته گفتن نمیاد دیشب دم ملاقاتی تو مسجد کوفه گفتن کجا میگم گفتن علی بن رااب میخواد کتاب فلانی رو خودمان از این گوش بکنیم این موجب استبسارش خارجی خارجیه برادری که از خوابش بیه در از علی بن رااب جز و اجلاع از یعنی هیچ جای بحث توش زوران که شانش اجلاع. این از همون معادل از کدوم مرونا؟ از داد ساده از داد وحنا. هر چی صحتش بیشتر بشه اشکالش بیشتره خب این سند کاملا صحیح ولی از عمل نگردید این چیز غریبیه بله قال سئلت عن الحمل يكون من شعر الخنزير يسقى به الماء من الورد تنابي که توش دل به این از موی خنزیره هل یتوب و من ذلک الماء قال لا با اینکه خنزوی تا ما اجزایشون در یک مشت ولی از اصحاب ما ایشون گفته این مندال کلمه یعنی از آب چاه چون رفتی تناب میره تو چاه این چاه نجس نمیشه اصحاب یعنی ظاهرش این که از آب آب در بزیگه خب از ایش قطع, قطع میشه بله دو احتمال دارن که و این اورید بیهیم ما و دلفه و کن و دلفه کررن مثلا دلفمزی کررون خب رد به علم این روایات این رد و که خب از این این یک روایات حالا دقت بکنیم در اون درست اگر اون باشه لابست آب چاکی معنی ندش نمیشه. آبکوه بله اما این ظاهره که بخواد با آووزوریه با که نمیگن با در در نظر اونات ناجی صورت زمان که نه مختلف بوده واسه. بله می دونم این دو قائل داره. اصرارمون بزرگان آورد کردن دیگه. خود کلنیو آورده شیخ هم آورده رواته. حالا یکم این زمافت های حدیثی رو بگیم بعد درسی در شماره 16 همین با. شماره 16. این یکی رو کلینی نگورده. شیخ صدوق مرسل آورده. شیخ توسی با سند آورده. دبیدین تک اون جلد نیتره فقط شیخ صدوق. حالا پوست خوک رو جلد خوک رو صدوق و شیخ توسی. موی خوک رو مرموم شیخ توسی و کلینی. حالا صدوق را باید ارز حدیث 16 این طوره به اسنادی، زمینه اسنادی به شیخ طوسی برمی‌گرده. شیخ توصی به اسنادی محمد بن علی بن محبوب یه مقدار وجی بشون صحبت کردن، با جایی دیگه صحبت میکنه عن یعقوب بن یحیی که از بزرگان ابن ابی عمره. که یه بزرگواری چوری باشه. و از عجایب اینه که اگر این از کتاب ابن ابی عمر بود، این از احمد اشعری نرو می‌کنه، حسین سید نرو فقط الان از این طریق به من عبیزیاد نهدی ایشان شناخته نشده الان برای ما و مثلا ما در مثل اینجور از ما احتمالیم مثلا ان زیادر خندی بوده مثلا این با مثال نسخه واضح نیست لیکن باز هم بعیده چون الان ما سه تا روایت در کافی دارید و غیر کافی در کتابه اربعه داریم همین عنوان آمده عبیزیاد نهدی هیچ چون زیاد ندارید توش ابن عبی عمر هم هست فقط یعنی هر نهدي. اینجا یکی از زراره. یکی از یکی دیگه. یکی چیز از یکی دیگه. نظام بقید می دونیم. قرارت موسیقی خراب باشه. به هر حال زیاد نهدی رو بی هیچ مجران نفیسیم بشنسیم. تشخیص بدیم. از زراره قال سالف عبا عبدالله از جلد الخنزیم یجعلا دلمن یستقاب حلمان قال نابرد. لیکن در اینجا یوتوزه توش نداره. ورضا اصحاب هم به بحثی کردن ما اینکه کلی هم نقله کرده اصحاب هم کردن برای انتفاع از اون مقاماتی که چی گفتی برای صرف های برای اینکه چون در طب سوابه... برای بهره در... حیوان یعنی سوال اینه که جلد خنزی قابل انتفاع هست امام میگه قابل اشکال نداره رضا قال شیخ الوجعن لا بثن یستقاه لكن یستعمله که فی سقی دواب بل اشجار و نهر زاله. پس فرق روایت شعر خنزیر و جلد خنزیر وشک شد تو روایت جلد خنزیر فقط یستقا آمده یعنی انتفاع تو روایت شعر خنزیر یستقا و یتقضا و مندال کلمه ها مکتر شد یعنی اون آب نجس میکنه یا نه امام میگه نه نجس میکنه اگه اون روایت مراد به آب در باشه روشن شد مطلب حالا مرحوم, مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه تو همین باب تو عوائل صدوق همین روایت سوئل صادق رو برده. این روایت دلب خنزی داره و ال صادق اینجا هم سوئله داره نمخی درجیبه در این روایت به خنزی که دلب از جلد خنزیر باشه اینجا هم داره و ال صادق علیه السلام با اینکه سائل زراره دیگه مصدرش هم کتاب نبی عمره این کتاب به اختیار مرحوم شده حالا من می‌خوام دقت رو خوب دقت کنید بله که چطور میشه این مسئله در بیاد در صدوق بعد از این عبارت بعد از همین عبارت به اصطلاح در فرید این طور داره ونا دعس دعلی ما به حبل تو من شعر اینجا رواید نقل نکده فتوه رو اوازه رواید نقل نکده این در حقیقت مروم شیخ صدوم در اینجا سه چیز رو ارده لا بأسه دعنی استقال ما به حبل اتخذ من شعر خنزی این یکی بعد داره وسوء الاساده و علیه السلام انجلز الخنزیر یو جعلا درون بعد داره وسوء الاساده و علیه السلام انجلو دل ميتم. اون رو دیگه اول خوندیم حالا این چقدر ناز صدور ظریف کارش واقعا آدم حیرتش می‌گیره این دو تا روایت با این که سند اون دو واسه دوقمیه روایت, روایت دل به خنزیر یعنی به خاطر نه صحت در اونجا داره که واسطه اول که صحیح امه در اونجا داره که به استراسه ال اساسه اما تو روایت موی خنزیر همون مطلب رو آورده اما اون رو روایت قرار نداده این چه این نظره چرا چون ایشان روایت موی خنزیر رو به مقدار انتفاق قبول کرده نجاستش قبول نکرده روایت موی خنزیر اینطوریه یستقا ببینید اندال هفت یکون من شعر خنزیر یستقا به الما مندرد این استقا یعنی هر یا توضع و مندال کلمه آللا است آل یعنی نیست چون این رعی بوده که مو اصولا نجس نیست داره موی خنزیر باشه زاهش آه، آه، با؟ زاهش با با پاک میشه بقید کردی؟ اینایه ترون دفته چیم حالا از انا؟ ایشان ایشان چه کار کرده؟ ایشان فتوا نداده ایشان رو باید نقوم نکرده ولابعصور لا باید لابعصور در انی یو سه قابل ببینیم تمام محتر رو باید یو سوزهش نگه برده یعنی ایشان چون میخواسته به قسمتی از رواد عمل بکنه به قسمتی عمل نکنه تدیز در خود جد در صلاح ما ایشان اگر ذکر میکرد باید همه ذکر میکرد نمیخواد ناقصم ذکر بکنه اون مقداری که از رواد قبول داره به عنوان فتوا عورده نه روایت للا بأسه به انیوستقل ما به حبل اتخل خنزیر یعنی انتفاع به او جایزه یوتورزه دیگه نگفته توی در تو خود درب یوتوزه نیست اونم انتفاعه سعال تو ابا عبدالله انجند خنزیر یوج الان درب یو هم یستقابه نم توش انتفاعه فقط این دیگه توش یوتوزه نیست این رو رو باید نرم کرده خوب. بقرد. لذا ایشان اش خلاصی حرفش اینه که نسبت به خنزیر انتفاع اشکال نداره اما تهارت اشکال داره طاهر نیست موی خنزیر استقان خنزیر تمام اجزای بدن خنزیر نجسه ولی موی خنزیر باشه اما انتفاع با او اشکال نداره پوست خنزیرم هم انتفاع اشکال نداره میشه انتفاع بود، اما تاهر نیست اما در جلود میته هم انتفاع بود هم تهارت بود فقط مانعیت سلام بود یعنی این رویشان با این ملاحظه دقیق بقیقه هم چه شد؟ یکی رو به عنوان فتواه آورده چون نیمه خواسته روایت تقدیه بکنه از اون قرم روایت دو تا داشته که این انتفاقی ای تاهاره ایشون غالب تاهاره هم نبود و این کاری که من دیدم که چند جدیدم بر همسلیم همین کاری کرده و این واقعا نشون می میده اگر چون من نه از مشایخ شده اینا. نه در کتاب اگر این حرف من قوی باشه نشون میده چقدر مرحوم صدوق ذریای نظر میده الان امام ما خیلی راحت برام رایینی برام با عادیات میگه روایت نرم میکنید میگه این قسم روایت لاغ عمر باها باب تبیح نواجی صدوق این کارو نمیخاسته خیلی راحت این قسم بالای عمر باها اگر روایت قبول داریم همش واجب بشه قبول ندارین یه اون فتوا ذکر میکنید نه روایت در روایت نباید تصرف بشه ایشان در روایت تصرف اون ظرافت کار در جلد خنزی چون توضع نداره تو خود روایت فقط استقاق داره در پوست خنزی. فقط در شعر خنزی توش توضع داره اونجا رو به عنوان روایت نقل کرده و فقط فتوه اومده ظرافت کار بخد واقعا از سجور در عملش با روایت فوق العاده انصافاً فوق است اینجا بخواد به شما بگید که من این روایت همه همشه قبول ندارم از اون برده میخواد دست کاری تو روایت بکنم. دیگه از نقضی روایت دست برگذاره به عنوان فتوا بگره پس در این حال فتوا ایشان از روایت فتوا ایشان از روایت لكن عمل مستقل در روایت بس علاله بس علاله هم نیم مسال الله علا محمد و آله هتون حالا ریشه های دیگه روایت کجاست فرده ایشان بله